قاب آن نرگس فتان تو بی چیزی نیست تا به آن زلف پریشان تو بی چیزی نیست از لبت شیر روان بود که من می‌گفتم این شکرگرد نوکدان تو بی چیزی نیست جان درازی تو بادا که یقین می‌دانم در کمان ناوک مجگان تو بی چیزی نیست محتلایی به غم مهنت و اندوه فراق ای دل این نالب و افغان تو بی چیزی نیست دوش باد از سر کویش به گلستان بگذشت ای گل این چاک گریبان تو بی چیزی نیست درد اشخر چه دل از خرق نهان می دارد حافظ این دیده گریان تو بی چیزی نیست